بسم الله الرحمن الرحیم بنا می و مهربان اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم انک لرسوله فالله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لكذبون هنگامی که منافقان نزل تو میآیند می ما شهادت می دهیم که حتما تو رسول خدایی خداوند می که تو قطعا رسول او هستی ولی خداوند شهادت میدهد که منافقان درغگو هستند اتخذو ايمانهم جنة فصدو عن سبیل الله این هم ما كانوا کارو آنها سفگند حاجشان را سفر ساختند تا مردم را از راه خدا باز دارند آنها کارهای بسیار بدی انجام میدهند ذلکا بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون آن است که آنها نخواست ایمان آوردند سپس کافر شدند پس در دلخواج آنها مهر نهاده شد بحققت را درک نمیکنند و اذا رايتهم توجبك اجسامهم وَإِنْ يَكُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُصُبٌ مُسَنَّدَةِ يَحْزَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُورُ فَحْزَرْهُمْ الله اللَّهُ اَنَّا يُؤْفَقُونَ انگام کانها را میبینی جسم و قیافه آنان ترا در شگفتی رو میبرد و اگر سخن بگویند، و سخنانشان گوش فرا می بید. اما گویی چوبهای خشکی هستند که بر دیوار تکیه داده شده هر فریادی از هر جا بلند شود بر ضد خود می فندارند. آنها دشمنان باقی تو هستند از آنان بر حذر باش خداوند آنها را بکشد، چگونه گناه حق منحرف نشو واذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووو رؤوسهم ورأیتهم یصدون وهم مستکبرون هنگامی که بان ها گفته شود بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند سرهای خود را تکان می دهند و را می بینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا القوم برای آنها تفاوت نمیکند خا استغفار برایشان کنی یا نکنی هرگز خداوند آنها را نمیبخشد زیرا خدا بیگمان خداوند قوم فاسق را هم او جات نمیکند. بئلذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ان فضوا والله خازم السماوات والارض ولكن لا یثقون آنها کسانی هستند که میگویند و افرادی که نزدی رسول خدا هستند انحاق نکنید تا پراغنده شبند غافل از این که خضاوجین آسمان ها و زمین از آن خداست ولی منافقان نمیفخنند یکونون لئن رجعنا الى المدینة لیخورجن الاعز منها الازلت ولی الله وَلِرَسُولِهِ ولی وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لا آنها می گویند اگر به مدینه باز کرتیم عزیزان ظلیلان را بیرون می کنند در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ولی منفقان نمی اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلك فقلائی که هم ای کسانی که ایمان آورده اید اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و حرکت کس کنند، کند زیانکار است وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخبرتني فيقول رب لولا أخبرتني إلى أجر قريبي از آنچه با شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آنکه مرگ یکی از شما فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا مرا مدت کمی به تأخیر نینداختید تا صدقت هم و صادحان باشم و لن یؤخر الله نفسا والله خداوند هرگز مرگ کسی را هنگامی که عجلش فرا رسد به تأخیر نمی‌اندازد و خداوند به, خدا به آنچه انجام انجام دهید آگاه